عوض بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعی انه خير و موفق و معین و یستحب القنوط و بل قیل به وجوبهی عقیب قر قراءت ثانیته یه سلوات بفرستیم و شروع کنیم اللهم صل آل على آل محمد و آل محمد بحث ما در مستحبات نماز میرسه به قنوت میدونید قنوت مستحب قنوت مستحب است استحبابا مؤکدا استحباب قنوت مؤکده استحباب مؤکد یعنی چه یعنی این کار واجب نیست ولی خیلی تاکید شده که انجام بشه خیلی تحکید شده مثلا نماز شب واجب نیست ولی خیلی تحکید شده انجام بشه قرآن خوندن واجب نیست اما به نظر میرسی که اون هم جزوه مستحبات معکد باشه یعنی بعضی از مستحبات رو شاید رها کنید خیلی مهم نباشه اما بعضی از مستحبات هست رها کنید مشکل پیش میاد لذا اونها رو به عنوان مستحب معکد ممکنه ازش تعبیر بشه این از حیث خود ماهیت استحباب مؤكد که چی هست به حد وجود نرسیده ولی شاره خیلی دوست داره که انجام بشه حالا چرا واجبش نکرده؟ خب شاره میتونست میگونه قنوط هم واجبه یک نکتهش همون که قبلن عرض کردم که ما باید این رو داشته باشیم شاره بناش بلی نبوده که هر چیزی رو واجب کنه چون اگر هر چیزی واجب باشه اون دیگه گناه زیاد ثبت میشه اگر قران خوندن واجب بود هر روز بر ما گناه سرک می می‌توشه و انصال اینها. یه علت شاید این باشه که خدا نمی‌خواست وظایف ما رو سنگین کنه. در نتیجه واجبات زیاد نیست. استهباب مؤکد یه بحث دیگم هم داره. پس من سه تا بحث گفتم. سومیش اینه که یک فدی از کجا متوجه میشه که یک مصطحبی مصطحبه معکده چطور میشه اینو فهمید؟ حس کردید اینو چطور میشه فهمید؟ یه استحبابی معکده است ممکنه زیاد روایت داشته باشه هی ببینیم که تو روایت متعدد می که قنوط انجام بدید قنوط انجام بدید آه، تو خود روایت تعبیرت به شدیدن مثلا گفته که خدا خیلی دوست داره یا اچیدن اینو انجام بدید و اینها پس خود تعبیر اونم تصریح در تعجید باشه مثلا مثلا خیلی استمرار داشته بله می‌بینیم نظرات معصومین اصلاً ول نمی‌کردن این رو کار بله. بله. رو ترجیح آره اینم یکی دیگه یه استحباب معکد هم میشه از اینجا به دست آورد که ببینیم تعابیر به صورت امر شده یعنی هی گفته این کار انجام بده این کار انجام بده به توی که اگر ما قریله بر ترخیص نداشتیم مثلا وجوب میفهمیدیم اما توی روایتی پیدا شده که اونجا گفته که واجب نیست ولی هی گفته انجام بدید انجام بدید. مثلا اگه به شما گفته بشه که آه پیش مطالعه انجام بدید پیش مطالعه انجام بدید. بعد یه روز میگن که واجب نیست اما اینکه هی میگه انجام بدید معلوم میشه که چیزه موکدیه پس این رو حتما یه جایی یادداشت کنید من الان در مورد این استصحاب موکد سه تا محور عرض کردم اینا خیلی اونجوری بحث زیاد نداریم مثلا ما تو فقه باید بحث بشه دیگه اینا بحث نشده استصحاب موکد از کجا به دست میاد و اینها ببینید هیچ عنوانی نداریم. تو فقه همینا رو خیلی توضیح نداده. من سه تا مهور گفتم اینا رو یادداشت کنید مطالبی که امروز داشتیم اینا رو پیاده کنید بذارید باشه کم مطلب زیاد میشه روش اضافه میکنید بعد از یه مدت می‌فهمید که مقاله به درد بخور شد درد خود تو هم به درد خودتون میخوره هم به درد طلبه‌های دیگه خب بعد قیل به وجوبه این سه با موعکد که گفتیم از اون راهایی که به دست میاد بعضیاش انسان رو میندازه به این تصور که اصلا ناكله واجبه با معکد یه خورده نیز بخوری میفتی اونجا میگی اصلا واجبه حالا شیخ صدوق رحمت الله علیه هم همینو گفته گفته که اصلا قنط واجبه یکی از اجزای واجب در نماز قنطه بل قیلبه وجوبه چتاب فقیه شیخ صدوق چیه؟ مقنه مقنه شیخ مفیدیست مقنه؟ مقنه اه شیخ ال المقنه شیخ صدوقه ولی اولین کتاب، یعنی اون چیزی که باید اول به ذهنتون برسای چتاب فقیه این منلای احضرالفقیه منلای احضرالفقیه اصل چتاب فقیه شیخ صدوق همینه و حالا آدرس کجا داده؟ قیل به وجود بید تو آور گفته که المقنه و هدایه پس تو فقیه رو قائل نشده اگر تو فقیه قائل به وجود نشده باشه فقیه از اون چتابای دیگهش شاید این اصل کاری همینه خیلی خوب قنوت رو حالا چی بخانیم در نماز مستحب عقیبه قراعت سانیه قراعت سانیه یعنی چی؟ قراعت آه نگید قراعت دوم بگید قراعت رکعت دوم چون مزاف مزافون علیه قراعت رکعت سانیه مطالبه ها معمولا اشتباه می تو اون جور موارد مضاف مضاف الیه رو صفت و موصوف میگیرین پشت سر قرائت رکعت دوم فل یامیته مطلقاً در یومیه مطلق این مطلقنش رو اگه میخواهید بدونید چیه باید به اقوال دیگه مطلع باشید بعضی وقتا مطلقاً ناظر به قبل و بعد این عبارت نیست ناظر به اقبال دیگه است ابن عبی عقید که یکی از فقهای های قدیمی ماست ایشون گفته که در نمازهای جهریه قلود اونجا خونده میشه آره در نمازهای جهریه صبح و مغرب و ایشا ولی شایدستانی میکنه مطلقه تو همش مستحب و فی ها در غیر نمازهای یومیه هم همینطور در اونها هم مستحبه به خاطر همین شما هر نماز مستحبیم می‌کنید در اونجا بعد از قرائت رکت دوم قنوت داره و غیره ها غیر یومیه حالا غیر یومیه میتونه واجبم باشه میتونه مستحبم باشه مثلا تو نماز آیات هم قنوت داریم تو نماز عیدین هم قنوت داریم تو نماز جمعه هم قنوت داریم مستحبم که نماز شب و موارد دیگر قنوت دار پس در همه نمازها قنوت مستحب است عدل جمعه غیر از جمعه غیر از جمعه یعنی در جمعه مستحب نیست آه. این استثناء استثناء از استحباب نیست استثنای از اینه که یه دونه قنوت باشه اونم بعد از قرائت ثانیه نه جمعه فرق میکنه چه میدونید دیگه چون خوندید قرتون عدل جمعه ته ادا حرف جر استسلام میشه میتونه فعلا باشه اون وقت جمعه ت باید بخونید ففی ها در جمعه حساب کتابش فرق میکنه دو تا قنوت داره حد همافل اولا قبل رکو و الاخر فثانیته بعد ال رکو رجت اول قبل از رکو، طویلکت دوم، بعد از رکو. پس دیدید این چون فرم میکنه، اینو با عده استثنایت. ول وقت ففیها قنوتان نماز وقت همون یه طویلکت نماز شد، درش دو تا قنوت هست. پس این هم استثنای از وجود قنوت بعد از ثانیه شد دیگه استحباب قنوت. اینجا فرم میکنه دوباره. چه فرقی داره مگه ففیها قنوتها پس دیدین استثناء از اون یک قنوت شد اینجا یک قنوت نیست دو قنوت قبلا رکوع و بعد او یه رو... یه قنوت قبل از رکوع میگیرید یه قنوت بعد از رکوع پس این استثناء شد کلن جنبلدی کنیم همه نمازها بعد القراعه ثانیه قنوت داره اما نماز جمعه یکیش قبل از روکو یکیش بعد از روکو یکشم نماز وقت که قبل و بعد روکو و قیله این قیله دیگه تر مورد این اینا نیست اینو کاش این تر می زدن پاراگراف رو جدا می کنم قیله یجوز و فعل و قنوط کلا مطلقا و رو جمعه و اینا رو کار نداره کلا یومیه غیر یومیه هر چی میخواد باشه نمازها هر چی میخواد باشه قنوتش رو میشه قبل از رکوع و بعد از رکوع بجا و هو حسنون شهید میگه این خوبه چرا بانچتیله هستش شاید شه؟ سالی میگه خوبه چون دلیل داره دیگه حتما دلیل داره و هو حسنون ل خبر داریم چرا نمیشه؟ بعضی وقتا میدید روایتی هست علما ندیدن شایدوشانی دیده میگه این چون من دیدم اینو این قول خوبیه بعضی وقتا میدید روایتی هست ولی علما اونو قبول نداشتن شایدوشانی میگه من قبول دارم پس اینجوری نیست که هر وقت روایتی بود چی؟ ببین مشهور ندیدن یه روایتی رو یه نفر دیده ولی مشهور به حرف اون اعتنام نکردن حالا شهیده سانی میگه من دیدم اونو اعتنام میکنم او حسن رو چه اشکال داره الان ببین همین حرف مشهور نیستی که یجوز و فعلل و قبل و بعد رکوب این مشهور نیست که شهیده سانی میگه ولی خوبه وطفای خوبیه یعنی مشهور باید این رو میگفتن آره دیگه مطلقا دیگه مطلقا دیگه برده. گفتم مطلقا یعنی چه یومیه چه غیر یومیه و هوا حسن و شهده ای این معلید شهده ثانی هستی که میتونید بهش عمل کنید هستن و هوا حسن و خبر خبرش هم آدرس به وسائل داده که البته آدرس وسائل عرض کردم بارها عرض کردم این از این باب که اون... یه روایتی داریم خوبه ولی کجا؟ فرم کنه اگه تو کافی باشه خیلی خوبه اگه تو منلا یسور باشه خیلی خوبه اگه تو تحضیب و استفسار قسمت اول روایت باشه خیلی خوبه اگر قسمت دوم فهم ما ما رواها فلان تو اون قسمت باشه خیلی جذاب نیست حالا اینا دیگه توضیحش باره کارگاه دیگه مثلا تو کارگاه توضیح میدم اینا رو فقط میگم چیز بشنوید که روایت کتاب به کتاب فر کنه جاش به جاش هم فر کنه من یادمه یه زمانی ما می‌خواستیم یه تاریخ کار کنیم رفتیم کتابخونه تخصصی تاریخ یه چند نفر بودیم مثلا با جوان بودیم این آقای رسول جعفریان ما رو دید و گفت بیاید دو من کارتون دادیم رفتیم متعواش گفت ببین اگه برای پول مول و اینا اومدید تاریخ کار کنید ول کنید برید به در شما نمیخورد. حالا هر چی می‌مدید بر تاریخ تخصصه. نمیتونید. شما الان تاریخ تبر رو نگاه کنید. اون گزاراهای چه اوورده. روایات فلانی با روایات فلانی فرق داره. اینا معتبره، اونها معتبره. شما اینا رو بلد نیستید، الچی میاد یه چیزا جمع می‌کنه، می‌نویسید، میری می‌رید، ولی به دردی نمیخوره. حالا محمدش گوش نکردیم و ادامه دادیم. ولی این حرفش درسته. حالا تو تهذیب و اینا روایات فرق می‌کنه. کتاب به چطاب فرق فعر میکنه چه کردم خدمت. حالا اینجا خبر رو اینو رو میگفتم وسایل وقتی آدرس میدن یعنی معلوم نیست دیگه از کجاست من نمی حالا فخر فقر یا کافیه یا دعایمه یا تفسیر امام ازگریه کدومه نمیدنیم این رو باید خودتون مراجعه کنید لیل خبر خبر محمد ابن یحیی از امام باقر السلام متش اینه القنوطا قبل الروکوب و این شعته و بعدهو خود امام بگید اگه خواستی برده انجام بده و همروهو علا تقییت زعیفون یه نکته دیگه آیه جوان چه پرسیدی؟ چطور مشهور اینو امن لکردن؟ ممکنه همین باشی که شهیده سانی میگه میگه مشهور میگن ها ما دیدیم سنادش هم خوبه مشکلی هم نداره ولی اون تقییتاً گفته شده امان واقع تقییتاً گفت ای خواستی بعد از رکو حالا چه تقییتاً پس ما بهش فتفا نمیدیم همون قبل از رکو فقط شهید ثانی که گفت حسنون باید جواب بده یه لحظه من نگاه کنید حقیه یعنی الان همین حدیث رو حمله بر تقییه کنیم که امام فرمود گنود قبل از رکو و این شعطق بعده ها حالا بعده ها نمید فا باید داشته به فا بعده اگر خواستی بعدش این تقییه یعنی چی؟ منظور مشروع چی بوده آه، یعنی علی سنت اینجوری تخخیر قائلن امامم برای که لو ندیم به ما دستور فهم که قنوط قبل از رو خواستی بعد رو لو نمیدیم شما فضای تقییه رو الان نمیتونید درک کنید باید فضای تغییر رو خودتون رو بندازید تو اون قراینی که هست تو اون خفقانی که هست مثلا تو زمان حجاج ابن یوسف اگه بفهمی شیعه هستی اول خودتو خانوادتو فکفامیلاتو همتون رو میبره توی زندانی که سخف نداره آفتاف میخوره تو اون کلم رو به اونجا تا بمیریم تو اون فضا بفهمی شیعه هستی این بلا رو سرتون میارن لذا امام چی بگه؟ دیگه بین دیگه چی خب نمیمونه شیعه از بین میره شیعه کمه اقلیت از بین میره لذا هزارات در مورد اقلیت شیعه احکام خیلی سختی دارن شما در اقلیت شیعه هستید اگر یه شیعی رو عذیت کنی اگر به داد یک شیعی نرسی اگر شیعی پول نیاز داره شما بهش قرض ندی اگر شیعی رو عذیت کنی شیعی رو به همسایه شیعت متوجه نشی شب گشته خوابیدهت فدرالتو درمیانم چرا چون اکثریت باید به فکر هم دیگه باشه حالا الان نمیدونم تو چشور ما ایران که الان دیگه حکومت شده جامعه به این بزرگی اونها شاید دیگه اون احکام جاری نباشه دیگه الان میلیون ها شیه داریم اماشون هم الحمدلله وضعشون خوبه و من خودم شب گوش نمیخوام اونها رو باید نمیدونم این الان جاری هست میدونه دیگه باید بزرگان و بگن ولی به حال همین چیزایی هست می نه در مورد اون سفت و صفت گرفتن نسبت به شیعان میگم چون جامعه عوض شده تقییهش هم همینطور الان تو جامعه ما هم تغییر شاید خیلی روشن نباشه اما تو اون فضا هزارات یه جوری دستون میدادن که معلوم نباشه اینا شیع هستن انشالله مشرف شید به عربستان حج که مشرف شدید اونجا خواهید دید یه مقدار فضای تقییه هست وقتی اونجا یه خود از این ادابازی های شیعیان رو درآورده یه دفعه دیدی ها اومدن گرفتن بردند دیگه معلوم هم نمیش کجا رفت مدیر کاروان مسئول کاروان روحانی کاروان کنسولگری همه همین ها باید بیز رهبری باید یه ماه بود هم ببینن تو کجاست این آخرشم سالم جیره تو یا نه این رو اون موقع میفهمی ها دیگه تغییرات جت خیری دیگه نمیشه ما اون دفعه که رفتیم حواسم نبود ما نمیدونستن تو همون حرم نبوی پسر نوجوانی بود اومرت خیلی در مورد انقلابی اونا پرسید دیدم خیلی خوبه اگر از اون شییان انقلابی اونجا بود. ما همه داشتیم براش توضیح میدادیم انقلاب رو. ما همه آره خوبه. تو می با هم چیز عا خوبی تو هر هم ازت مرشمه داریمهش می بعدا مت تو بابا اینجا خطرنا چوب باید این دار با حواس چند میبره حال باید باشه دیگه. شیعان اونجا درد خفق هستن متاسفانه. خب، مثل همون شه شهید نمر دیگه. سرشو اون بولیدان هیچ آب از آب رفت تخون نخورد یه عالم بزرگی هم بود هیچ چی میشه؟ اینکه نماز روزه تو طور نماز وتر؟ خب صاحبش خود دیر پارسی دیگه رد شد. این رو نه. این چه دو تا رو کو داره به نظرم نظر مشهور هست. آله. نمیدونم نظر مشهور هست یا اجماعی هست ولی رو ببینید دیگه من اینو رو جو نکردم شهید سانی که میگه که در نماز بعد دو تا رکو هست قبل و بعدش آره ولی این چه الان فتفا چی هست یه لحظه بزرگیم دارم این که بعد از رکو باشه انگار خلاف مشهوره انگار خلاف مشهور. حالا باز ببینید دیگه اما تقیه برحال ازگردم یعنی چی؟ و حمله یک فتوا بر تقیه شرطش اینه که تغییر بودن اونجا اصلا جور در بیاد مثلا اینو یاد بگیرید مثلا بعضی از خوغه ها بعضی از فتاوا رو حمله بر تقیه کردن گفتن امام علی السلام این رو فرموده حمله بر تقیه میشه بعد محققین بررسی کردن دیدن این فتوای اهل سنت که امام طبق اون بخواد تقیه کنه این فتوا مثلا فتوا شافعیه و شافعی در زمان این امام اصلا هنوز نبود. امام که نمیتونه 100 سال آینده رو الان تقیه کنه؟ پس هر جایی نمیشه گفت تقیه. ببین ما سنی‌ها گفتن پس این تقیه است. نه. باید همون زمانی که امام این حکم رو میفرماید اون زمان حکم اهل سنن هم باشه، یه حکم قالیمی هم باشه. مثلا یه ابو حنیفه گفته اون زمانم ابو حنیفه اصلا تحت تعقیبه کسی رو گوش نمی‌کرد اون که تعقیبه نمیشه لذا اگر ساده و ظاهربین باشید فوری میگه تقیه مخصوصا ممکنه یه جایی بگید تقیه که اصلا اهل حلتون فتا رو ندارن اصلا بعد هم این همین داده نشده اتفاقا شهید ثانی اینجا اشکالش همینه میگه آقا اینو حمله بر تقیه می‌کنین اصلا این فتوا که قبل و باشه تأخير باشه اصلا اهل سنت این فتفا رو ندارن اصلا امام از چی داشته تقییه میکرده طبقه چی داشته میگفته لذا این تقییه در جا همش اگر همین باشه است. این سادگی هست اهل, اهل, اهل سنت فتفاشون از همون زمان امام واقعی ها به بعد چه همش رسیده ببنه علی صنعت چه خبرش رسیده آره مشکل نداره؟ واقیل یه جون زویر لول پنوت مطلقان قبل رکوه، بعده او و هو حسن لیل خبر و حمل این خبر بر تغییر ضعیفان، لانن الاممتا لا یقولونه به تأخیر. امّا اصلاً غالباً تأخیر نیستن. آیه محمدی پور تأخیر بین چی و چی شده وی؟ تأخیر بین محمدی بخواد بینویسه بگو بینویسش تأخیر بین باشتنی تو بگو تأخیر بین چی؟ بین, بین قنوط قبل از رکو و بعد از رکو و این شهتتی که این شهتت روید شده خوندن برای آمه احل سنت آمه سنت عامه یعنی اهل سنت لا یقولون به تأخیر وقتی به تأخیر قائل نیستن معنی نداره امام بیاد تقیه کنه در مقابل اونایی که اصلا قائل به این نیستند. اجباریه. دیگه اونا اونها قائل به دو طرف نیستن هم قبل از رو. قبل از انجام بده. خیلی خب این هم از این. پس آقا در مورد تقیه هم یه فایل باز کنید و هر چی اطلاعات دستتون میاد توش بریزید. مخصوصا بحث تقیه چه بحث خیلی مهمه. بحث خیلی مهمیه. تقییه در موردش چندین چتاب نوشته شده. پایان نامه، مقاله، پروژه. حتی شیخ در موردش تقییه رساله داره. دیگران دارن، الان هم خیلی دارن. بلد. شاید خیلی از تعارضهای ما علتش تقیه است. یعنی امام اینجا میگه برو، اینجا میگه نه نه چی شده؟ تقییه شده دیگه. من خودم در مورد تقیه اونجور که باید کار نکردم هنوز بیشتر از این جا داره کار بشه مثلا الان همین چیزی که شهید سانی گفت من یه خورده تو شبه دارم آیا تقیه فقط جاییست که اهل سنت قائل به اون فتفه باشن؟ آمه یا میتونه اصلا یه امام تقییتاً یه فتفای بده کسا هیچ که نیست نه اهل سنت نشیه چون هدف ردگم کردنه دیگه میخواد شیعه ردگم کنی حالا فتفای اهل سنت باشه یا نباشه مهم نیست که خب اگه این حرف من ثابت شه این حرف شدسانه غلط در میاد لذا اینا بحثای مهمیه اینا باید کار بشه من جا داره کار شه یعنی شما از همین تغییر رو شرو تا 20 سال دیگه هم کار کنید ممکن هنوز زوایاش تمام نشده باشه. چی؟ خب سوسو، تو توضیحاات من چی گفتن؟ گفتم امام مفرد. یا مردم شیعان عمر عمر شیعان, عمر عمر شیعان, شیعان دیگه. یعنی خب امام به یه شیعی میگفتن تو برو رو همین فرش سجده کن. مثلا وقتی منتصر دیگه. اگر اون مش سجده میکرد میشناختنش. خود امام بله اما اون شیعیان چی؟ بعضی وقتا خود امام هم خیلی روشن نبود برای اونا تو اون بل بعضی بزم میگوی اینقدر خلیفه تونتون عوض میشه اصلا بعضیشون یعنی خیلی چیز نبود که امام امام اونجا که برای ما مشهور و معروفه اونجا که مشهور و معروف نبود که مگه تو اونجایان فرزده نمیبینیم اونجا امام سجد در استنام میان ردشن رو استلام کنن. با اون ولایت الهی که دارن جمعیت کلاً میده راه باز میشه بعد اونجا سوال میشه این چیه اون حاکم من چیه کیه فاینال رو میگن هی چیه و چیه اینا فرزر قام میشه میگه بابا این چه چیزیه که همه اینو میشناسن مچه و مدینه و حاکم بچها اینو میشناسه تو تو چی تو تو را چه کسی خب ولی کنل قنوتو بالمرسوم آقا حالا قنوت چی بگیم باید قنوت بل مرسوم باشد لیکن فعل امر دیگه اما برای شویه علل افزل دیگه افزل دیگه خود قنوت که واجب نیست حالا چی باشه هم علل افزل مرسوم باشه مرسوم رسم شده رسم شده یعنی فارسی ترسیم شده هزارات چی ترسیم کردن برای ما؟ یعنی هزارات چی گفتن توضیحشون چی بوده؟ گفتن چی بگیم؟ اون توضیحات که دادن برای ما اون رو بگیم اگر خیلی روشن نشد یعنی چیاریم؟ خیلی محصور هزارات چی گفتن برای ما از هزارات چی رسیده همونو بگیم و یجوزو به غیرهی به غیره اون چی که برای ما هزارات ترسیم کردن هم میشه افضل این مرسوم افضل غیر ها به غیرهی تم شدیم افزل و هو یعنی اون چیزی که برای ما مرسوم شده مر... یعنی ترسیم شده کلمات الفرج ببین امام علی السلام به ما یاد داده اینو پس این میشه مرسوم دیگه کلمات الفرج کلمات الفرج میدونین چیه؟ لا اله الا الله الحلیم الكریم لا اله الا الله الحلی العظیم سبحان الله رب سماوات سبع و رب العرزین سبع میخونند وزیادی دید دیگه و ما فی و ما بینه و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین پس افزل قنوت اینه و بعدها بله چلمات فرش دیگه همین ها اسمشه دیگه اسمشه آره دیگه در نام ما چیز نداریم مناغشه نداریم و بعد ها اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واف عنا فی الدنيا والآخرته انك على كل شیء قدیر شهدسان دیگه چلمات فرج رو طلب ها میخوندن حفظ بودن دیگه اصلا نیاز به توضیح نمینیگی یه اشاره بکن ببین همه حفظ دیگه همه میخونید دیگه اینا کجا تو قبل توضیح دادم کجا دا دادم کیلنه. خب, دارد. خب دارد. دارد. یه توضیح دارد. یه اولش رو یه اشاره میکنم معمولا و اینجا هیچ کار نیست بعدش این آجان بعدش این یعنی اول اونو بخونیم بعد اینو بخونیم رتبه بعد, رتبه بعد. پس بعده ها بنویسید فل سید فلفزیله لافذ ذکر افزل اونه اگه اون رو نخوندی داره. رتبه بعدش اینه اللهم فلنا ورحمنا و آفنا آفیت بده به ما وعفو انا از ما چشم پوشی کن ف الدنیا و الاخره این نجلا کلش این قدیر و اقل له سبحان الله ثلاثه او خمسه دیگه اگه زحمت دیگه ببخشید دیگه واقعا نمیتونه بگی حداقل سه تا سبحان الله بگو اینو بگی دیگه نممیری ان الله <تصفيق> یه استادی داشتیم میگفت این ربنا لا قلوب قلوبنا فی. بعد از هدایتنا اون خیلی ذکر خوبیه برای قنوت بعضی‌ها میگن تو رساله‌اش نوشته دعاهای قرآنی خیلی خوبه این ربنا لا توس قلوبنا بعد از نام و نام من که رحمه باید رحمت بخوایم خدا به ما رحم کرد اینو هم نذری خوبه خب و یستحب حالا کیفیت انجام قنوت چیه با رفع الیدین بهی موازیاً لوجهه مستحب بس دست‌ها را دو تا دست رو بهی یعنی به قنوت فل گنود این بعد انجام معنی فی داره یا معداره داره همراه یا در قنوت دستها رو بیارید بالا موازی هم لبچه به این شب دست ها دست ها موازی صورت بوتونو هما الاس سما چف دست به صورت به سمت آسمان پس این موازاتش یعنی در مقابل صورت پایین نباشه بالا هم نباشه موازی صورت ولی کف دست به طرف بالا بطونه همائل از سما متیل متعیل اصابه انگوشت جمع باشه تا گفت انگوشت جمع باشه زود بس ابحامین پیش میاد اونا چی؟ اللل ابحامین کجا ابحامین هم جمع بود؟ موقع ایستادن چه؟ آره. موقع ایستادن آره حواظ تو ولی تو روکو دوباره باز بود. پوتون همه مزمون متعیل اصابه ایلال ابحامه. انجام بدید یه بار رو موازات با صورت یعنی چی؟ یعنی پایین و بالا نباشه. دیدید بعضی ها اینجوری گنود میگیدن. بعضی ها حال نداری بیارد بالا اینجور. نه جلو صورت موازی صورت چف دستا روبه بالا. البته حالا دیگه ارفن دیگه یالا. اینجوری دارستانی؟ اینجوری بخیر درست کنی آره یالا روبه به بالا سیاره منم ولی متعارف دیگه بله رو روبه... صورت نشه با دست اینجوری رو صورت رو به نه رو به صورت نخواستم روبه بالا آره بتونه ما الی سما کف دست روبه صورت نیست که مضمون متل اصابه هم که انگشتا بازه این دو تا ایپام انگشتا بسته دو تا ایپام باز آره فهمی شه ول جهر بهی حالا بلند بخونیم یا سری بخونیم میگه ول بهی سه نفر داریم امام، معموم، فرادا منفرد میگه امام و منفرد بلند بخونن معموم آهسته بگه پس ول بهید و بهی مستعد بس جهره بگونود برای امام و منفرد که جماعت نمی کن. سر هم برای معموم دیگه معمومه دیگه بلند بخونه شاید حواظ پرد شد و یفعله ها ناسی حالا جالبه اگر رو قنود فراموشتون شد یفعله ها ناسی قبل الرکو بعده دو تا ظرف داریم متعلق این دو تا ظرف رو باید بگید چیه قبل الرکو متعلقه به ناسیه بعده ها به یفعله یعنی فراموش چرت شخصی قبل از رکو خب بعد از رکو انجام میده. حتی اگر قائل به این باشیم که در اختیار جایز نیست بعد از رکو انجام بدید. اون روایت که شاید قبولش کرد و هوه اون اونو نپذیریم بیم نه جای رکو نود قبل از رکوه. میگه حتی اینم اگر شما دارید و بعد از رکوع رو قیل نیستید باز کسی که فراموش شده میتونه انجام بده. و این قل ناب تعیونه قبل لهو قبل از رکوع اختییام. خب چون اینجا اختیار نیست که فراموش شده. فعل لم از کر حتی تجاب اگر یادش نیومد فراموش کرد قلوط یادش نیومد تا اصلا نماز تمام شد. غذا بعد از سالات بعد از نماز که تشهد و سلام دادی تمام شد. همون جا قنونت رو قضا کن. جالسن نشسته. بریا هموقع هم یادم نیمده بود. آره پا شدم رفتم. میگه قبلند وقتی داری میری سمم. فه طریق مستقبلا. ها یا مستقبلا. این میدونی چرا. یعنی روبه قبله. رامیری. یه لحظه برگرد طرف قبله. قنونت رو قضا کن. فرد قدام بده راحت خودت. مستقبلا مستقبلا نمیخواد در آینده رو روبه قبله حالا ایستادن و رفتنشو نگفته اونو نگفته اگه به ایسته بگی که خب طبعا بهتره ولی نگفته شاید ظهورش از که فت میگه فت قدم داره میره دیگه آره. حالا بدون توجه به ادله دیگر شاید هم موقع حرکت بگم، عب ولی باید ادله دیگر رو ببینید. بله. زمانش نمیدونم دیگه. شاید هم تهالته و اینا باشه دیگه. بگه آره، دو سه سال پیش نگفتیم گفتیم الان قضا کنیم، فشتم، <تصفح> نمیدونم اون باید ببینید. اینا دیگه جوابش معمولا تو همون روایات خابیده و چون خوه ها فهم خودشون رو اون تیکی که خودشون میخوان رو ورداشتن و لذا ما بدون این که روایت رو ببینیم نمیتونیم این خورده کاریاش رو جواب بدیم متاسفانه این هست من بارها گفتم مثلا روایات رو ببینه خوبه حالا من الان تصمیم دارم این ببینم ولی باز بعضا میبینی فرصت نمیشه همه شو آ اختیارم اون تبیره گفتم چه؟ این قولنا به تأیونهی این خارج این قولنا به تأیونهی اختیارم یعنی در حالت اختیار فقط باید قبل از رکوع به بیاری. آه. قول دومی بود که در حالت اختیار میتونی بعد رکوع هم به جا بیری داشتیم میگه اگر این قول قبول نکنی حتی بعد از رکوع رو قبول نکنی بگی نه جاش فقط قبل از رکوعه باز وقتی فراموش شد, شد عب نداره بعد از رکو انجام بده این مانع نمیشه این مشکل مانه نمیشه, نمیشه. تعیون تعیون فعل قبل از رکو در صورت اختیار وقتی اختیار داری متعیناً باید قبل از رکو انجام بدی و یتاب معمول الامامه یا امامه و فیهه و انکان مسبوغه مسبوغه امام نمازشو شروع کرده، رکعت اول رو خونده، رکعت دومه. شما میرسی و به امام اقتدا میکنی. وقتی اقتدا کردی شما اول اولته دیگه. قنوت نداره چه. امام چه قنوت رو گفت، شما اونجا تبعیت کن. شما قنوت رو بگو. اینو پس یتو به اون معموم تبعیت میکنه معموم از امامش در قنوت و انکانم مسبوغن حتی اگر معموم مسبوق بود یعنی معموم دیر رسیده بود مسبوق باشه یعنی دیر رسیده امام سابقه زود رسیده معموم مصبوغه. بعد اومده باشه. این نه این یه حکم روشنی دیگه این حکم مشوره که امام معموم در صورتی که حتی تطبیق نکنه رکاتشون ولی وقتی امام قنوت گفت من اونم بگی این همون قشون روشن و مشهور تو ذک چه جوری باشه یعنی امام زود تر شروع کرد اینم نه یعنی امام هر گفت. من رو چی گفت ما اونها می‌گیم درست باشه مشکوک باشم که باشم من خندیم امام زود تر شروع کرد ما خندیم شروع در نمیاد آره نه اون نیست زلنگ خاصی لازم نیست همون و همون میتونن جدا دعا بخونن مشکلی ندارم خب ولیت عفیه حالا چی دعا کنیم دارستانی من یه بار یکی از آشنامون که شخص عوام بود محده بودم قوم هرم بودیم گفتم دعا کنیم گفت الله بلد نیستم چی بگم ما با هرچی دوستاری بخواه دیگر حالا تو قنوط ما چی بخواهیم چی دعا کنیم ولیت افیه آره. همین دیگه همین دیگه آره. ولیت او فیه دعا کند در قنود و فی احوال سلات جالبه تو سایر حالات نماز هم همینطور لدینهی و دنیاهو منال مباه هم برای دینش و هم برای دنیاش البته برای دنیاش مباه باشه چیز حرام یا وقت نخونه آره مثلا بله حرام اگه بخواد الان میگیم حتی نمازشم باطل میشه. ویسو ول مرادو بهی مراد بهی از این مباح در اینجا مطلق الجائزه و هو غیر الحرام مباه یعنی غیر حرام. اگه گفتید اینو برای چه شینی رسانه توضیح داد؟ مستحب گفتید مباح تعریف یعنی پاک مباه یعنی پاچه هست مباده نه مباه ببیند علتش اینه چون مباه دوتا معنی داره یکیش مباه به من الاخست یکی مباه به من, ال من الاخست یعنی مباه واجب نیست حرام نیست مستحب نیست هم نیست قسم پنجام از احکامه که نه خوبه نه بده مباهه مثل آب خوردن در جایت عادی اما یه مباه به من ال داریم مباح یعنی که حرام نیست، جایزه. حالا این جایزه ممکنه اصلا واجب باشه. مباح ممکنه مستحب باشه، ممکنه مکروه باشه. شاید شما میگه اینجا مباح هم منعل امن یعنی حرام نباشه. مباه نباشه اون مباح باشه یعنی آره، غصبی نباشه. باز دوباره یعنی پاچ نیست. توی احکام نماز، مکان نمازگزار مباح باشه یعنی غصبی نباشه. یعنی از این توضیحات من یه معنا برداشت اگه منو برداشت من خیلی برای من شکست بزرگ نه حلم نمیخواد همینجا حلم چلم ببین اگر من بگم که آب خوردن حجمش چیه شما چی میگی آب خوردن مباهه یعنی چی خیلی حالا من میپرسم آیا آب خوردن مباهه یا مستحب چی میگی نه الان رو جواب بده آب خوردن مباح یا مستحب یا مجروح خوب اینکه همش که موباه بود که تو توضیح اوله مباح یعنی حرام نیست دیگه خب مستحب و مجروح هیچ کدوم حرام نیست پس به توضیح شما سوال دوم اصلا غلط بود به هر حال چه غلط نبا خودت جواب دادی بچه حالا دیگه برو حرام حالا اجازه یه چیلیپی پرش شده تو این دو دوست دوست اگه خوب من خوب توه خوب تو خوب من این رو چیه من اینش کردم بگه نیازه به هره این رو ببینیم چیه میکرو چی زر و بدن بزن آ این الان علار شهیدسانی حالا با این توضیح چه گفت مباح بالمعنا الاعامه یعنی شما حتی تو نماز میتونی مبا هم بخور مجروح باشه خدایا کلی پنیر بر... من برسون که بخورم مجروح دیگه ابنادرم هیچ چیز کنم نه جایز دیگه حرام نیست چی پنیر خوردن مکروه دیگه آره اوصا بگیم خدایا برسون برای صبحانه یه خورده پنیر بخورم صبحانه روزه آره پس مباه منظور غیر حرام مطلق الجائز و هو غیر الحرام و تب طول الصلاه حالا سوال شما تو گفتید اگر حرام بخواد چی میشه با تب طول الصلاه حالا دیگه سوال نپرسین اینو تموم کنم این چون باید تا آخرش برسونیم تو این 8 دقیقه بعدش باز رحمت هستم تب طول الصلاه چون اینو بحث دیگه خیلی نداره فقط متن خانیه نماز باطل می شود اگر بخواهد حرام را بم معنی خواستن نه سوال کردم سوال میدونه دو تا معنی داره یکی خواستن سائل جدا چه میگیم یعنی میخواد یه سائل هم داره سوال پرسنده اینجا خواستنه اگر حرامی را بخواهد نمازش باطل میشه البته شرط داره قید داره شاید سالی میگه میگه من علم به تحریمه این یه چیز حرامیه مثلا بای خدا یه دیشه ماهواره حسابی برام برسون خب این حرامه دیگه اگه میدونسه حرامه اون وقت باطل میشه و ان جهل الحكم الوزعیه و هل بطلان اینو این واسطی و ان جهل الحكم الوزعیه و هل بطل اصلا اگه باز نمیدونسه که چیز حرام بخواد نماز باطل میشه پیش میاد ها یه وقت تو قنوت مثلا یاد تو حالات نماز یه دفعه یاد اون چیزی که میخواد میافتید بعد تو دلش به خدایا اینو مثلا برام برس تعال صورت اگه حواست باشه حرام خواستید نماز باطله حتی اگر نمیدونستی نماز باطل میشه نماز باطل شد دیگه و این جهل الحجم وضعی به بطلان نماز را اما جاهل و تحریم ای اما اگر یه شخصی اصلا نمیدونست این حرامه جاهل و تحریم این محرم قبلیش هم تحریم محرم ها. چون بعضی ها فکر کردن تحریم اون سؤال رو داره میگه نه تحریم سؤال نه تحریم همین کار حرام که میخوامش یا بگی تحریم اون مدعوف اون چیزی که میخوامش مد دیش آره همون دیش ماهوره چه آره. توضیحت آره اما اگر کسی نمیدونست اون اصلا حرامه ففی عذر هی وچانه. اگر نمیدونست آیا عذر داره نماز پاتل نشه یا نه میگه دو وجع هست که البته دو قول هست بعضی میگه وجحان بعض و اجبدهم قدم معذور نیست اگر نمیدونستی این حرامه اصلا نمیدونستی دیش حرامه پلی تو قنوت خواستی الهی و ربی من نیه غیر و چه. از چی بخوام؟ یکی شو حسابی برام بریست بفرست که همه هم بگیره همه چی رو بگیره ما اون قشنه حالی ازش بگیریم و اینها نمیدونست حرامه میگیم ایب نداره؟ محضور نیستی نمازت باطله سر رهبهی فز ذکرا به این عدم در ذکرا تصریح کرده البته ظاهر اطلاقش در اینجا هم همینه و هوا ظاهر اطلاقه هنان در لومه قید علم نزده روح اطلاق بنویسید قید علم نیورده گفته تب تلوله و سهلل محرم مطلقه ورده دیگه پس چه بداند و چه نداند نماز باطل میشود تمام حالا بریم سراغ تعقیب تعقیبات نماز آخرین مستحق ما بعد نماز هست که دیگه نماز تمام شده پس همونطور که میبینید مستحبات ما یه بخشش اصلا بعد نمازه یه وقت نکته یه ها مستحبات نماز یه چند تاش بعد از تموم شدن نماز تعقیب و حال اشتغال و عقیب و سلاته به دعا این او ذکره. یا دعا میکنه از خدا میخواد یا ذکر میگه ذکر و دعا فرده ندیگه و چی عقیب یعنی پشت دو و هوا غیر ملحصن آقا تحریبات چی اند منحصر نیست خیلی ما ماورادمن ها هستند اهل بیت علیهم السلام کتابا رو ببینید مفاتیح رو ببینید کتاب‌های روایی کتابایی چه در مورد اضیه و اینها اومده خیلی فراوان وارد شده بعد نماز چی بگیم چی بگیم چی بگیم مثلا ایام رجب بعد نماز چی می‌خونیم یامن رجب رو خوندن نه تحریبات دیگه زیاد خیلیه ما رمضان ما شعبان اینها چی میگیم خیلی زیاده بله نه دعا و ذکر و هوا اشتغال به دعا یا ذکر اون اگه باشه میشه نافله آره نافله با تعقیبات فرق افزل افضل چیه افضل حک تکبیر و سلاسم سه بار تکبیر بگو الله اکبر الله اکبر. الله اکبر تکبیر نه سلام رو چه دادی نماز تموم شد. اون تکفیله بازید. رافعن به ها یدعهه الا حضای اوزنعهه. دستش رو میاره بالا تا موازات گوشهاش. وازن لهما علا رچبته. بعد دسته رو میذاره روی رچبته. یعنی رچبه. زانوها یا اگه اون خیلی دوره. یه اون بیاره این برده. اون من هما. مستقبلا به باطنه ما القبلتا. وقتی دست تو وردی الله و اکبر اینجوری باطن دستان به قبل است موقع بالا وردن سمتم که بعد از انقلاب این رو انقلابش کردن دیگه تا تشبیر الله و اکبر الله اکبر الله اکبر خمین رهبر مرجع ضده ولایت فقیح و اینها بعض درمی گفتم این ها این ها بدعته بدعته تو تطبیرش یه خود گیر داشتن نه <تصحنت> <تصحنت> اگر نتونی تطبیق بدی نتونی تطبیق بدی وقت خوشگاه پیش میاد خب سمت تحلیل بعدش های دارستانی تحلیل این بین دو که مراسم میگیرید اینا رو داشته باشی تحلیل بل مرسوم تحلیل یعنی لا اله الا الله گفتم حالا کودم لا اله الا الله همون که برای ما ترسیم شده لشان غزلات توضیح دادن چه شکلی؟ این عبارت اینه لا اله الا الله و الهن واحدن و نحن له مسلمون اینو یاد از قدیما میخوندیم حتی تو مدرسه هم اول سوفی صبح تو صبحگاه میخوندیم دست به هم میدادیم الهن واحدن و نحن له مسلمون لا اله الا الله عرف وسائل شریط نفتیه کتابای دیگه اینا هست سوم تسبیح و زهرا علیه السلام و و ت... خب، حالا این که سمه گفته شاید ثانی میدونه فضیلت تصفیه زهره خیلی بالاست اصافاً تصفیه زهره یه اوجوبهیه لذا زود میگه و تحقیبه ها به سمه منحج و رتبست ها یعنی جاش اونجاست بعده للفزیله و الا فهیه افزلهو مطلقه چشتو ببند بگو فضیلت این از همه بیشتره نه تحصیل چی نمیشه بل روی انها افزله من الف رکعتن ازن روایت شده که این تصبیات عزت زهره یا نماس با تصبیات عزت زهره افضل است از هزار رکعتی که تصبیحی پشتش نیست هزار رکعت خیلیه بدون تصبیات عزت زهره بخونی با یه دونش باز برابری نمی کنه. این بهتره لا تصبیح اقبه ها پشت سرش تصبیح نباشر داره چیفیت تصبیح عزت زهره چطوره انیوکف بره عربان و سلاس و یحمد سلاس هم و سلاسی این مردم و بار تحمید یعنی الحمدلله و سی و سه بارم تسبیح بعدش دعا بخونه بعدها بل منگود، دعایی که منگور شده از تسبیحات ثم به ما سنه به ما سنه یعنی اون دعایی که به ذهنش میرسه اون دعایی که دوست داره هرچی میخواد. ثم از دو تا سجده شوچ و یعفرو بین هما بین دو سجده تعفیر میکنه تعفیر یعنی خاکمالی کردن صورتشو به خاک میماله به هم مهر میماله دیدید بعضی ها میمالن اینو همش داره جبینه دو طرف پیشانیشو به مهر میماله یا به خاک و خدغه ها. گونه هاشو به مهر ترتیب داره میگهاره الایمنه منه ما سمل اول راست رو بعد چپ رو مفترشن زراعه و صدره و بطنهو ببین ذراعه این دو تا آرنج رو میذاره زمین، سینش رو و شکمش هم میذاره زمین. قشنگ میخوابونه خودش رو به زمین. البته خب یه مادر پاها باید باز باشه که به زمین برسه شکم. واز عن جبهته و مکانها. پیشونیش رو هم همونجا که موقع نماز میذاشت حال صلات اونجا میذاره مکانها یعنی مکان جبهه در هنگام صلات میذاره. قائلا فیه ما تو این دو تا شکر چیز اینجوری میگه. الحمدلله شکرا شکرا صد بار معتمرتن. هر دهتاش که اونجا میگه شکرن للماجیب پس میگه الحمدلله شکرن شکرن تا به دهمی ده رسید میگه شکرن للماجیب دونه هو اگه اونو نمیتونید ست بار بگید شکرن و اقلش دیگه سه بار شکرن بگو اقل لبو شکرن سلاسن و بعدش ید اوفیه ما و بعده ما تو این دوتا سجده شکر و بعدشون دعای بل مرسوم میخونی که از هزرات رسیده سلام و درود بر محمد و آل محمد دیار خدا جولو تسبیح عقبه‌ها این آره. از هزار رجتی چه تسبیحی پرسر ندارد دقیقاً آره خونه امام امام آره تسبیحات از نظر یه چیز حسابیه دیگه شکر موجیبی این میشه شکران یعنی شکر میکنم برای کسی که مرا اجابت می‌کند خدا چه به من جواب میده و مرا اجابت میکنه منم ازش تشکر چه فی کل یعنی به هر در هر دهمیش 10 ده تا بود دیگه دحتو دحتو دحتو هر 10 تا ده تا یعنی 10 تا 10 تا اینو اضافه شد حداقل نه فی کل آشش بله. هر 10 تا یعنی 10 20 30 40 50 میگه آقا هر دعایی خواست برای نماز کنه میگه دیگه دعای حرام دیگه نمیشه اون باطل نمیشه نه این اگه دیگه باطله دیگه شما والا رو موقع بخاست ولی خب نه خالص فدره دیگه درا خودتون این حرام دیگه شاید خود دعاش هم حرام باشه اصلا آره بعد از نماز بعد نماز علائم بکنه طلا بکنه بعدنو ولی نمازش باطل نیست چون مال بعدشه مثل کسی که وزوش بعد از نماز باطل شد میگه نماز باطل نمیشه ولی خودش حرام دیگه نه نه حرام خود دعوا حرام خودت باش بنظر ممکن حرام باشه نباشم به حال چیز مخلوبی نیست آره آقا مره میگه آقا یک بار معنی نمیده معتا مرتا محدود معص یعنی صد بار یعنی بار معنی میده یعنی یک بارش صد تا باشه چه صد بار مرتن که صد تاست صد مره. سنها فهمیدن چی به ذهن میرسد؟ صد دقیقش سنها. خداحافظ. سنها معنای چی به ذهن میرسد؟ یا معنای چی دوست داره؟ اون چیزی که دوست داره. این یکی از اون دو تاست. خداحافظ. خداحافظ. خدا. هر لحظه شماها دعا وقتی تمی خلاصی. خب خیلی صحبت نهای مسلسل صحبت نه. مدرسه با من چه ارتباطی نداره من دو